کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام عمر ابن سعد سر حسین را با خولی ابن یزید اسبهی و حمید ابن مسلم ازدی سوی ابیدالله الله فرستاد و سر دیگران از اصحاب و اهل بیت را بفرمود جدا کردند هفتاد و دو سر بود با شمر ابن زلجوشن و قیس ابن اشعس و امر ابن حجاج بفرستاد <تصفح> اصر روز آشورا، حرم حسین و دختران وی همه اسیر شدند و به اندوه و گریه شام کردند و شب را به سر بردند، نه مردی داشتند و نه مددکاری دشمنان از ایشان بیزاری می نمودند و برای تقرب به عمر سعد و خوشایند ابن زیاد، آزار و توهینشان نشان می خولی ابن سر حسین را به کوفه برد شب بود و کوشک را بسته یافت به سرای خیش رفت و او را دو زن بود یکی از بنی اسد و دیگری هزرمی نامش نوار دختر مالک ابن اقرب و آن شب نوبت وی بود نوار دختر مالک گفت خولی سر حسین را بیاورد و را زیر تشدی نهاد در سرای و خود در خانه آمد و به بستر رفت گفتم چه خبر است و چه داری؟ گفت برای تو ارمغانی آوردم که تا روزگار است دولتمند باشی اینک سر حسین در سرای توست من به او گفتم وای بر تو مردم زرسیم آرند و تو سر پسر پیغمبر آورده ای؟ به خدا سوگند هرگز با تو در یک خانه نباشم و از بستر برخواستم و از خانه به صحن سرای رفتم او زن اصدیه را بخاند و با خود به خانه برد من نشستم نگاه می کردم. به خدا قسم می دیدم نور مانند ستونی از آسمان تا آن تشت پیوسته بود و مرغان سفید می دیدم بر گرد آن تا بامداد شد و خولی آن سر را نزد عبید ابن عباس گفت پیغمبر را در خواب دیدم گردآلوده و جولیده موی و پای برهنه شیشه پرخون در دست داشت و تلاوت می کرد لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون و ما پندار که خدا غافل است از کردار ستمکاران پرسیدم یا رسول الله این خون چیست؟ گفت این خون حسین است نزد خدا می برم. امروز از زمین برداشتم، ابن عباس صبح برخاست و مردم را از قتل حسین خبر داد و از آن روز حساب نگاه داشت تا بعد از آن که خبر رسید، دانستند همان روز کشته شده بود عمر ابن اکرمه یکی از اهالی مدینه گفت صبح برخاستیم. یکی از بستگان ما حکایت می کرد که شب آوازی شنیده ای شما که حسین را بنادانی کشدید، شما را به شکنجه و عذاب مجدب پیغمبران و فرشتگان و همه توایف آسمان نفرین میکنندتان شما لعنت شده اید به زبان سلیمان داوود و موسی و عیسی دو سه ماه هنگام برآمدن آفتاب دیوارها را گویی خونالود میدیدید چون سر حسین به خانه ابن زیاد رسید از دیوارها خون میبارید او آن سر را برداشت و بر روی موی او نگریست ناگاه لرزه بر دستش افتاد آن سر را بر روی ران خود نهاد قطره خون از آن بچکید از جامهاش در و رانش را سوراخ کرد چنان که هر هرچه جراحان کردند معالجه آن علت نتوانستند لاجرم ابن زیاد با خود مشک نگاه می داشت تا بوی بد ظاهر نشود قیس عباد نزد ابن زیاد بود ابن زیاد گفت درباره من و حسین چگویی؟ گفت روز قیامت جد و پدر و مادر او درباره او شفاعت می کنند و جد و پدر و مادر تو درباره تو ابن زیاد سخت برا شفت و او را از مجلس براند. ابیدالله سر حسین را فرستاد در کوچه های کوفه و قبائل بگردانیدن. عمر سد بقیه روز آشورا و فردای آن تا ظهر در کربلا بماند و کشتگان خودشان را گرد آورد و نماز گذارد بر آنها و به خاک سپرد و حسین و اصحاب او را همچنان در بیابان گذاشت. پس حمید ابن بکیر احمری را گفت فریاد بزند که لشگر روانه کوفه شوند و خود با هر که از کسان حسین مانده بود آماده رفتن شد. گلیم ها بر جهاز شطر کشیدند و زنان را سوار کردند بی دوشکچه و میان آن همه دشمن با روی باز کشان می بردند و آن همه بیس زن بودند و دوازده پسر از بنی هاشم که اسیر شدند علی ابن حسین آن روز بیست و ساله بود و محمد ابن علی ابن حسین چهار سال داشت و فرزند حسن ابن علی معروف به حسن مسننا نیز با ایشان بود و نیز زید و عمر و فرزندان حسن ابن علی با ایشان بودند. علی ابن حسین گفت چون ما را بر جهاز شطر سوار و به جانب کوفه روان کردند کشتگان را بر زمین افکنده دیدم. به خاک ناسپرده و بر من گران بود از آنچه می دیدم. سخت آشفته بودم چنان که نزدیک بود جان از تنم بیرون رود. اما ام زینب دختر بزرگ علی آثار آن حوزن در من بدید به من گفت ای بازمانده جد و پدر و برادرانم چون است که جان خود را در کف نهادی، گفتم چگونه بیتابی نکنم و ناشکیب نباشم که میبینم سید خود و برادران و اموها و عموزادگان و کسانم را بر زمین افتاده و به خون آغشته در این دشت رو ربوده نه کسی آنها را کفن کرده است نه به خاک سپرده هیچ کس سوی آنان نمی آید و هیچ مردی نزدیک آنها نمی شود گویی خاندان دیلم و خزرند امام گفت این را به جزع نیاورد که این عهدی از رسول خدا با جد و پدر و امت خداوند پیمانی گرفته است از جماعتی از این امت که فرعونان زمین آنها را نمی شناسند اما فرشتگان آسمان‌ها میشناسند آنها این استخوان‌های پراکنده فراهم کنند و این پیکرهای خونالود به خاک سپارند و در این زمین کربلا برای قبر پدرت نشانی بر دارند که اثر آن کهنه نشود و رسم آن با گذشتن شبها و روزها ناپدید نگردد و هرچه چه پیشوایان کفر و پیروان زلال در محو آن بکوشند اثر آن ظاهرتر شود. عبیدالله بن زیاد نامه سوی یزید نوشت و خبر کشته شدن حسین و گرفتاری اهل بیتش را به او داد و اجازه خواست که آنها را نگاه دارد یا روانه مدینه کند. چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد گروهی از بنی اسد ساکن قریه قازریه آمدند و بر حسین و اصحاب او نماز خواندند بوریای نو آوردند و زیر بدن حسین بگستردند و او را در همین جا که قبر اوس به خاک سپردند و علی ابن حسین را پایین پای او دفن کردند و برای دیگر شهدای اهل بیت و اصحاب که در آن حوالی بودند حفره‌ای کندند از جانب پای او و همه را با هم در یک جا به خاک سپردند و عباس ابن علی را در آنجا که کشته شده بود در راه قاضریه دفن کردند. حر یزید را خیشان او در آنجا که کشته شد دفن کردند. بنی اسد بر سایر قبایل عرب فخر می کردند و به خود میبالیدند که ما بر حسین نماز گذاردیم و او را با اصحاب او دفن کردیم. بنی اسد برای بیشتر آنان قبری کنده میافتند و مرغانی سپید میدیدند زن زهیر بن قین به غلام وی گفت برو و مولای خود را به خاک سپار ان غلام برفت و دید حسین برهنه است گفت چگونه مولای خود را کفن کنم و حسین را برهنه گذارم به خدا قسم که چنین نکنم پس حسین را در آن کفن پوشید و زهیر را کفنی دیگر کرد سلمه گفت بر ام سلمه در آمدم دیدم میگریست گفتم از چه میگری؟ گفت رسول خدا را از زمان رهلت تا دیشب در خواب ندیده بودم دیشب دیدم بر سر و محاسنش خاک نشسته بود گفتم یا رسول الله از چه خاک آلودی؟ گفت اکنون در مشهد حسین بودم امشب برای حسین و اصحاب او قبر میکندم چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید مردم شهر به نظاره گرد آمده بودند. زنی از اهل کوفه از بلندی بر اسیران مشرف گشت و گفت شما اسیران کدام اید؟ گفتند اسیران آل محمد آن زن فرود آمد چادر و مقنعه و جامه‌های های دیگر بیاورد به آنان داد تاخیش را بپوشیدند. زنان کوفه زاری کردند و گریبان چاک زدند. و مردان هم با آنها بگریستند علی ابن حسین بیمار بود و از بیماری ناتوان به آواز ضعیف گفت اینان بر ما گریه می کنند پس ما را چه کشت؟ حزام ابن ستیر اسدی گفت زینب دختر علی ابن طالب سوی مردم اشارت کرد که خاموش باشند دمها فرو بسته شد و زنگ و درای کاروان از بانگ و نوا ایستاد پس خدای را ستایش کرد و درود بر رسول او فرستاد، هرگز زنی پردنشین ندیدم گویاتر از وی، گویی بر زبان امیر علی سخن میراند، گفت، ای مردم کوفه، ای گروه دقا و دقل و بیهمیت، اشکتان خشک نشود و نالتان آرام نگیرد، مسئله شما، مسئله آن زن است که رشته خود را پس از محکم تافتن و ریستن باز تار تار میکرد سوگندهاتان را دستاویز فساد کرده اید چه دارید مگر لاف و نازش و دشمنی و دروغ مانند کنیزان چاپلوسید و چون دشمنان سخنچین چون سبزی بر پهن رو اید و چون گچی اندود روی قبر ظاهرتان زیباست و به آرایش و باطنتان گندیده برای خود بد توشهی پیش فرستادید که خدای را بر شما به خشم آورد و در عذاب جاودان مانید می گرید آری بگرید که شایسته گریستنید بسیار بگرید و اندک بخندید که آر آن شما را گرفت و ننگش بر شما آمد ننگی که هرگز از خیشدن نتوانید شست و چگونه از خود بشویید این ننگ را که فرزند خاتم انبیاء و سید جوانان اهل بهشت را کشتید؟ آن که در جنگ سنگر و پناه حزب شما بود، در صلح آرامش دل و مرهم زخم شما، و در سختیها ها التجا و در مشکلات مرجعتان، بعد از آنچه چه پیش فرستادید برای خیش، و بعد است آن بار گناهی که بر دوش خود گرفتید برای روز رستاخیز نابودی باد شما را نابودی و سرنگونی باد سرنگونی. کوشش شما به نومیدی انجامید و دستها بریده شد. تجارتتان زیان کرد. خشب پروردگار را برای خود خریدید و خاری و بیچارگی شما را حتم شد. میدانید چه جگری از رسول خدا شکافتید و چه پیمانی شکستید و چه پرده از او را از پرده بیرون کشیدید و چه حرمتی از وی بدریدید و چه خونی ریختید کاری شگفت آوردید که نزدیک است از حول آن آسمانها بترکند و زمین بشکافد کوه بپاشند و از هم بریزند مصیبتی است دشوار و بزرگ و بد کج و پیچیده و شوم که راه چاره در آن بسته در عظمت به پری زمین و آسمان است آیا شگفت آورید اگر آسمان خون ببارد همانا که عذاب آخرت سختتر است و گناهکاران بیار یار و تأخیر و مهلت شما را چیره نکند که خدای تعالی از شتاب و عجله منزه است و از فوت خونی نمی ترسد و او در کمینگاه ما و شماست من می ترسم عذابی بر شما نازل شود مانند آن عذاب که قوم عرم را هلاک کرد علی ابن حسین گفت ای امه خاموش باش باقی مندگان را باید از گذشتگان عبرت گیرند و تو به همد الله دانایی و نیاموخته خردمند و گریه و ناله رفتگان را باز نمیگرداند پس زینب از آنها رول بگردانید. حزام ابن سطیر اسدی گفت مردم را حیران دیدم دستها به دندان میگزیدند پیرمردی در کنار من بود میگریست و ریشش از عشق تر شده بود دست سوی آسمان برداشته بود و میگفت پدر و مادرم فدای ایشان سال ایشان بهترین سال خردگانند و سالان آنها بهترین سالان و زنان ایشان بهترین زنان نسل آنها والاتر است از همه و فضل آنها بالاتر علی ابن حسین از مرکب فرود آمد و چادری زدند او زنان را فرود آورد و داخل چادر شد علی ابن حسین بیرون آمد مردم را اشارت فرمود که خاموش باشند خاموش شدند او ایستاده سپاس خدای گفت و ستایش او کرد و بر نبی درود فرستاد انگاه گفت ای مردم هر کس مرا میشناسد میشناسد و هر کس نمیشناسد من علی فرزند حسینم که در کنار فرات او را کشتند بی آنکه خونی طلبکار باشند و قصاسی خواهند من پسر آن کسم که حرمت او را بشکستند و مال او را تاراج کردند و ایال او را به اسیری گرفتند. منم پسر آن که او را به زاری کشتند و این فخر ما را بس. ای مردم شما را به خدا سوگند میدهم. آیا در خاطر دارید سوی پدر من نامه نوشتید و او را فریب دادید و پیمان و عهد و میثاق بستید و باز با او کارزار کردید و او را بیاور گذاشتید؟ حالاک باد شما را چه ای برای خود پیش فرستادید و زشت باد رأی شما؟ به کدام چشم به روی پیغمبر نظر می افکنید وقتی با شما گوید اطرت مرا کشید و حرمت مرا شکستید پس از امت من نیستید صدای مردم به گریه بلند شد و به یکدیگر میگفتند هلاک شدید و نفهمیدید علی ابن حسین گفت خدای رحمت کند آنکه نصیحت من بپذیرد و وصیت مرا محض خدا و رسول و خاندان وی نگاه دارد همه گفتند ابن رسول الله ما فرمان فرمانبرداریم و پیمان تو را نگاه داریم دل به جانب تو داریم و هوای تو در خاطر ماست خدای تو را رحمت فرستد، فرمان خیش بفرمای که ما جنگ کنیم با هر که جنگ تو خواهد و آشتی کنیم با هر که تو با او صلح کنی و قصاص خون تو را از آنها که بر تو و ما ستم کردند بخواهیم علی ابن حسین گفت هیهات، هیهات، ای بیوفایان مکار، میان شما و ما شهوات ها ارامد میخواهید مرا هم همان اعانت که پدرانم کردید هرگز سوگند به پروردگار راقصات آن زخم که دیروز از کشتن پدرم و اهل بیت وی بر دلم رسید هنوز به نشده و التیام نیافته داغ پیغمبر فراموش نگشته داغ پدرم و فرزندان پدر و جدم موی رخسار مرا سپید کرده تلخی آن میان و مهنجره من است و اندوه آن در سینه من مانده. خواهش من این است. نه با ما باشید، نه بر ما. فاطمه دختر حسین که حسین او را برای حسن مصنا گزید گفت سپاس میگویم خدا را به شما شنها و ریگها و همسنگ جهان از عرش تا خاک. او را ستایش میکنم و به او ایمان آورده ام، و توکل بر او کردم و گواهی میدهم که نیست معبودی غیر خداوند یگانه بیشریک و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست و اینکه اولاد او را در کنار فرات سر بریدند به تو پناه می برم خدا از اینکه دروغ بر تو بندم و خلاف آنچه بر رسول خود فرستادی سخنی گویم رسول تو پیمان گرفت برای وسیع خیش علی ابن ابی طالب اما مردم حقش را قصب کردند و بی گناه او را کشتند باز فرزند او را دیروز در خانه از خانه های خدا کشتند گروهی از مسلمانان به زبان که نیست بادند چنان مسلمانانی و تا او زنده بود آبش ندادند تا تو ای خداوند او را به جوار خود بردی ستود خوی و پاک سرشت هنرها شناخته و روشش روشن او از نکوهش کسی باک نداشت و از ملامت اهدی نترسید. از خردی به اسلام راهش نمودی و در بزرگی خسائل وی را ستودی و برگزیدیش. پیوسته با تو و پیغمبرت دل راست داشت تا او را به جوار رحمت خود بردی. بی به دنیا بود و راغب به عقبا و برای رضای تو در راه تو کوشید. اما بعد ایا اهل کوفه؟ ای مردم بی وفا و خودخواه، ما آن خانواده ایم که خداوند ما را به شما آزمود و شما را به ما، و ما از آزمایش پاک بیرون آمدیم و دانستیم سر الهی نزد ماست و ماییم حافظ علم و حکمت خدا، و ماییم آن حجت که در زمین برای بندگان نسب فرمود، ما را به بزرگی بنواخت و به رسولش برتری داد و برتر از بسیاری از آفریدگان خود نشاند. اما شما ما را دروغ گودانستید و ناسپاسی کردید. کشتن ما را حلال شمردید و مال ما را تاراج کردید. گویا ما اولاد ترک و کابل بودیم. چنان که دیروز جد ما را کشتید از شمشیر شما خون ما میچکد به کینهای گذشته. چشم شما بدان روشن گشت و دلتان شاد شد با خدای تعالی دلیری کردید و مکری اندیشی دید مکر خدا بالاتر است مبادا از ریختن خون و بردن منال ما شادان شوید که این مصیبت بزرگ که به ما رسید در کتابی ثبت افتاده است پیش از این که خداوند آن را انفاز کند و آن بر خدا آسان است تا برانچه از دست شد اندوه نخورید و به آنچه به شما بخشید ننازید و نبالید که خداوند دوست نمیدارد او را که به خود ببالد و بنازد منتظر لعنت و عذاب باشید که گویی اکنون آمده است از آسمان لعنت های پی در پی فرو بارد و شما را حلاق کند و شما را در این جهان به جان یک دیگر اندازد اونگاه در عذاب علیم روز قیامت جاودان مانید که بر ما ستم کردید. لعنت خدا بر ستم کاران. وای شما دلتان سخت شد و جگرها درشت کردید و بر دل و چشم گوش شما مهر نهاده شد. شیطان در نظرتان ها را بیاراست و نوید طول عجل داد و بر دیده شما پرده آویخت که نشناسید راه را. هلاک باد شما را ای اهل کوفه که شما را با رسول خدا کینه هاست و از وی خونها خواهید و با برادرش علی ابن عبی طالب جد ما و با فرزندان وی که اطرت بر و پاکان و برگزیدگانند بیوفایی کردید رشک میبرید بر آن فضل که خدا ما را بخشید گناه ما چیست که دریاهای ما جهان را فرو گرفت و دریای تو آرام است و دعموس را هم نمیپوشاند. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و من لم یجعل الله له نورا فما لهو من نور. آن از سر فضل خداست که به هر که می خواهد میدهد و در تاریکیست هر که خدا به او نور نداده باشد. آوازها به گریه بلند شد و گفتند ای دختر پاکان بس است که دلهای ما را بسوزاندی و سینه های ما را از حسرت کباب کردی و اندرون ما را آتش زدی پس دختر حسین سکوت کرد ام کلسوم دختر علی از پشت پرده خود خواند به گریه بلند که ای اهل کوفه زشت باد روی شما بهترین مردان پس از پیغمبر را بکشتید و مهربانی از دل شما برکنده شد حالا که فیروز گردند حزب خدای و حزب شیطان زیان کنند و من در زندگی خود بر برادرم گریه می کنم به اشک بسیار که همیشه بر چهره ام ریزد و هرگز خشک نشود مردم به گریه و شیون آواز برآوردند. زنان موی پریشان کردند و خاک بر سر ریختند و روی ها بخراشیدند و بر رخسار سیلی میزدند زدند و زاری می کردند مردان بگریستند و ریش ها کندند. زن و مرد گریان بیش از آن روز کسی به یاد ندارد